بعد از ظهر وقتی از درمانگاه بیرون آمدم در خیابان ساحلی راه افتادم سمت پل گرونل سعی می کردم یادم بیاید قبل از خوابیدنم توی خانه خواهرهای روحانی چه اتفاقی افتاد اتاقی که مرا آنجا برده بودند دیوارهای سفیدی دیشبیه اتاقم در درمانگاه می را بوی اتر هم همان بوی اتر بیمارستان بود این می توانست در تحقیقات کمکم کند میگویند بوها بهترین چیز برای جان دادن به گذشته هستند بوی اتر هنوز هم تأثیر عجیبی رویم داشت به نظرم میآمد همان بوی دوران بچگی است ولی چون خواباور و مسکن بود تصاویری که نشانم میداد، بلافاصله بلا فاصله درهم و برهم می شدند حتما به همین دلیل بود که از دوران بچگی هم خاطرات مبهمی داشتم اتر همزمان هم خاطره را زنده می کرد و هم فراموشی را بیرون آمدن از مدرسه با نت کابین دار خانه خواهران روحانی دنبال جزئیات دیگری می گشتم. خودم را توی اتومبیل کنار زن می دیدم. او در بزرگی را باز کرد و اتومبیل در کوچه باغی پیش رفت اتاقی در طبقه اول خانه داشت آخرین اتاق تایر رو ولی این خاطره های تکه تک به قدری مبهم بودند که نمی‌توانستم آنها را در ذهنم نگه دارم فقط صورتش واضح بود چون روی گونهش جای زخم داشت واقعا به این نتیجه رسیده بودم که این صورت همان صورتی است که آن شب توی بیمارستان مرکزی دیدم با پیشرفتن در خیابان ساحلی به نقش خیابان آلبانی و دهانه تونلی رسیده بودم که مترو هوایی از آنجا می میدان کمی دورتر و قائم بر خیابان بود. تصادفی جلوی ساختمان بسیار بلندی که در شیشهای و تزئینات آهنی سیاه داشت ایستادم. قصد داشتم از در پارکینگ بروم تو و از سرایدار بپرسم ژاکلین بوسرژان کدام طبقه زندگی میکند و اگر ساکن آنجاست زنگ خانه را بزنم ولی سرزده به خانه این آن رفتن توی ذات من یکی نبود تا به حال نه به کسی التماس کرده بودم و نه کمک خواسته بودم از تصادفی که بعد از بیرون آمدن از مدرسه اتفاق افتاد تا تصادف آن شب در خیابان پیرامید چه مدت گذشته بود؟ حدود پانزده سال زنی که توی ماشین پلیس و میمارستان بود جوان به نظر می رسید در مدت پانزده سال آدم زیاد تغییر نمی کند از پله ها بالا رفتم و وارد ایستگاه پاسی شدم در حالی که روی سکویان ایستگاه کوچک منتظر قطار بودم دنبال نشانه هایی تا بفهمم آیا زن میدان آلبونی همان زن پانزده سال پیش است؟ در سم لازم بود اسم محلان مدرسه را پیدا کنم همچنین خانه خواهرانی روحانی و خانه دیگری که اتمن مدتی تویش زندگی کرده بودم و او اتاقی ته راه رویش داشت این خاطره برمیگشت گشت به دوران اقامت در بیاریت و جوان جزا. قبل از آن بین این دو به ترتیب زمانی اول بیاریدس و بعدش هم جوانجوزا بعد از جوانجوزا به پاریس برگشته بودم و خاطرهایم بازه و بازه تر شده بودند چون آن موقع به سنی رسیده بودم که به سن عقل معروف است شاید فقط پدرم میتوانست راهنمایی رانمایی کوچکی بکند ولی اولا طبیعت معو شده بود پس باید خودم به تنهایی از احتش بر آمدم و این کار برایم عادی بود قطار رو به ساحل چپ در حرکت بود و داشت از روی سن میگذشت پس از کنار بناهایی رد می شد که هر پنجرهی روشنش برایم معمایی بود هفته قبل از تصادف یک شب توی مترو به دکتر بویر برخوردم و نزدیک بود شاخ در بیاورم او به هیچ وجه از این ملاقات تعجب نکرده بود و برایم توضیح داد که معمولاً موقعیت‌ها و چهرهایی که در گذشته دیده ایم دوباره به زندگیمان برمی‌گردند گفت در یکی از جلسات آینده موضوع تکرار ابدی را تشریح می‌کند احساس کردم می‌خواهد رازی را با من در میان بگذارد حتما از اینکه اون روز من و تو وضعیت عجیبی دیدین تعجب کردین. با نگاه ملایمی به من چشم دوخته بود. هیچ اثری از کبودی روی صورت و گردنش دیده نمیشد. ببینین جانم، هاست چیزی رو از خودم مخفی میکنم. چیزی که جلوی چشم بقیه قبولش نکردم. بعد دوباره آرام شد. سرش را تکان داد. معذرت میخوام. لبخند زد. معلوم بود از اینکه در آخرین لحظه جلوی خودش را گرفته و اعتراف سنگینی را به زبان نیاورده احساس آرامش می کند پرحرفی می کرد و چیزهای بی ربطی می گفت انگار می خواست ردبها را خراب کند بلند شد و توی ایستگاه بیگال پیاده شد بگینگی نگی برایش نگران بودم